به پلیس گفتید؟ نه، به پلیس نگفتم. چون پلیس را ندیدم. پلیس آنجاست. حتما به پلیس بگویید. راستی کیف پولتان چه بود؟ کیف پولم سبز و کوچک بود. یک کارت هم در آن بود. پیش پلیس بروید. امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود. انشا الله پلیس حتما به من کمک میکند بله او حتما به شما کمک میکند